کتاب آخ بازخانی مقتل حسین بن علی علیه السلام عبیدالله به کوفه درآمد آمد سیاه بر سر داشت و روی پوشیده و مردم را خبر رسیده بود که حسین به کوفه می آید چشم به راه او داشتند چون عبیدالله را دیدند گمان بردند اوست پس عبیدالله بر هیچ گروهی نمیگذشت مگر اینکه بر وی سلام میکردند و میگفتند مرحبا بک ابن رسول الله خوش آمدی. ابن زیاد از خورسندی آنها به آمدن حسین برمی‌افت و چون بسیار شدند مسلم ابن امر گفت دور شوید که این امیر عبیدالله ابن زیاد است و همون شب رفت تا به قصر رسید و گروهی گرد او را گرفته بودند به گمان آنکه که حسین است نعمان ابن بشیر در را به روی او و اطرافیان او بست یک تن از همراهان بانگ زد تا در بک شاین. نعمان از بالا مشرف بر آنها گشت او هم گمان می کرد حسین است گفت تو را به خدا قسم می دهم که دور شوی که من امانت خود را به تو تسلیم نمی کنم و حاجت به جنگ با تو ندارم ابیدالله هیچ نمی تا نزدیک آمد و نعمان از بالای قصر با او سخن میگفت گفت در را بکشای که هرگز نباشی که در بکشایی شب دراز شد مردی از پشت شنید و به آن کسان از اهل کوفه که در پی او افتاده بودند گفت سوگند به آن خدایی که غیر او معبودی نیست این ابن مرجانه است بر او ریگ زدن گرفتند نؤمان در برای او بک و او داخل شد و در رابر روی مردم دیگر زدند و آنها پراکنده شدند. بامداد شد. منادی ندا کرد نماز به جماعت. مردم گرد آمدند. و ابن زیاد بیرون آمد و خدای را سپاس گفت و ستایش کرد. آنگاه گفت اما بعد. امیرالمؤمنین شهر و مرز و بیت المال شما را به من واگذاشته است و مرا فرموده که ستم رسیده شما را داد دهم و محرومان را عطا کنم و بر شنونده فرمان بردار احسان کنم و بر نافرمان سخت گیرم و من فرمان او را در باره شما انجام دهم و پیمان او را انفاز کنم من نیکوکار و فرمانبردار شما را چون پدری مهربانم و تازیانه و شمشیرم بر سر کسی است که فرمان مرا ترک کند و از پیمان من درگذرد پس باید هر کس بر خود بترسد با این مرد حاشمی بگویید سخن مرا تا از غضب من بپرهیزد و مقصود وی از هاشمی مسلم ابن عقیل بود، پس از منبر فرود آمد. شریک ابن اعور برهانی فرود آمد و وی را بر تقویت مسلم تحریز می کرد. برکت خدایان محلات سخت گرفت و گفت نام خدایان را برای من بنویسی و هر کس را کستها از آن امیر یزید یزیده است و هم کسانی را که در شما از خوارجند و اهل شک و تردید که عقیده آنها مخالفه است همه را بیاورید که رأی خیش را درباره آنها ببینم برکت هر خدا که نام آنها را برای ما ننویسد باید زامن شود که در حوزه کت خدایی او هیچ کس مخالفت ما نکند و به فتنجوی برنخیزد پس هر کس چنین کند زمه ما از وی بیزار است و خون و مال او برای ما حلال و حرکت خدایی که در حوزه او از یاغیان بر یزید یافت شود و خبر او را به ما نرساند بر در به دارا آویخته شود و عطای او لغو گردد و به جایی در امان و زاره روانه گردد گویند که جماعتی از اهل کوفه را بگرفت و همان ساعت بکشت چون مسلم آمدن عبیدالله و سخن او بشنید از خانه مختار بیرون شد و به سرای حانی ابن اروه مرادی درآمد. آمد. حانی را بخواست. حانی بیرون آمد و او را بدید و سخت ناخوش آمدش. مسلم به او گفت آمدم تا مرا پناه دهی و مهمان کنی. حانی گفت چیزی فوق طاقت من تکلیف کردی. و اگر در سرای من داخل نشده بودی و به من اطمینان نداشتی دوست داشتم بازگردی الا این که برای دخول تو تکلیف بر عهده من آمد داخل شد او را منزل داد و شیعه نزد او رفت و آمد داشتند پنهان و پوشیده از عبیدالله زیاد و یک دیگر را به کتمان توصیه می‌کردند و مردم با او بیعت میکردند. تا 25000 هزار مرد بیعت کردن و خواست خروج کند حانی به او گفت شتاب مکن مسلم نامه سوی حسین فرستاد با آب سبن عبی شبیب شاکری و قیس ابن مسحر سیداوی نوشته بود اما بعد آن کس که به طلب آب میرود با اهل بیت خود دروغ نمیگوید از اهل کوفه هجده هزار کس با من بیعت کردند. پس در آمدن شتاب فرمای. همان وقت که نامه مرا خانی که همه مردم را دل با توست و دل به جانب آل ماویه ندارند. و سلام. ابن زیاد مولای خیش را که معقل نام داشت بخواند و گفت این ما را بستان و سه هزار درهم به او داد. گفت در طلب مسلم ابن عقیل و یاران او شو و با آنان الفت بگیر و این مال را به آنان ده و بگو که تو از آنانی و از اخبار آنان با خبر شد. معقل بیرون آمد و به مسجد اعظم رفت. نمیدانست دانست چه کند. مردی را دید پشت ستون مسجد بسیار نماز میگذارد با خود گفت این گروه شیعه بسیار نمازند. و گمان دارم این مرد از آنها باشد. و او مسلم ابن اوسجه بود. و معقل شنیده بود که مردم میگویند او به نام حسین بیعت میستاند چون از نماز فارق شد گفت ای بنده خدا من مردی از اهل شامم. خداوند به دوستی اهل بیت بر من منت نهاده است و این سه هزار درهم است و خواهم آن را به حضور آن کس برم که شنیدهام به کوفه آمده است و برای پسر دختر پیغمبر بیعت میستاند. و از چند کس شنیدم که تو از امر این خانواده آگاهی نزد تو آمدم تا این مال را بستانی و مرا نزد صاحب خود بری تا با او بیعت کنم و اگر خواهی پیش از رفتن به حضور او بیعت از من ستانی مسلم گفت از لقای تو خرسندم که میخواهی به مطلوب خود برسی و خداوند به سبب تو اهل بیت پیغمبر را یاری کند ولیکن ناخوش دارم که مردم از این کار پیش از تمام شدن آن آگاه شوند از ترس این مرد ستمگر و ستوت او پس بیعت از او بگرفت با پیمانهای سخت و غلیز در پوشیده داشتن امر خود شریخ ابن احور رنجور شد ابن زیاد وی را گرامی می داشت و هم عمرای دیگر پس به سوی او فرستاد که امشب نزد تو آیم شریک به مسلم گفت این مرد فاجر امشب به ایادت من آید چون من گفتم مرا آب دهید بیرون آیا گردن او بزن آنگاه در قصر امارت بنشین که کسی تو را مانع از آن نشود و اگر من از این بیماری رهایی یافتم به بسره روم تا کار آنجا را برای تو یکسره کنم چون شام شد ابن زیاد برای ایادت شریک بیامد و شریک به مسلم گفت مبادا این مرد از چنگ تو به در ولی هانی برخاست و گفت: من دوست ندارم، عبید در خانه من کشته شود. عبید با غلام خود مهران بیامد و بر فراش شریک بنشست و مهران بر سر او بیست. عویدالله از شریک حال بپرسید و گفت بیماری تو چیست؟ از کی بیمار شدی؟ شریک گفت مرا آب دهید. کنیزکی قده آب بیرون آورد. چشمش به مسلم افتاد. از جای بشد. شریک دیگر باره گفت مرا آب دهید. و بار سوم گفت وای بر شما مرا آب هم پرهیز میدهید به من آب بدهید اگر چه جان من در سر آن برود. چون سوال به طول انجامید و شریک دید کسی بیرون نیامد ترسید مخصوص از دست برود اشعاری را خواندن گرفت دو بار یا سه بار اشعار بخاند و عبیدالله الله نمیدانست قضیه چیست گفت هزیان میگوید، هانی گفت آری اصلحک الله از پیش از غروب آفتاب چنین است تا کنون مهران متوجه شد و پای عبیدالله را فشار داد عبیدالله از جای برج است شریک گفت ای امیر میخواهم تو را وسیع خیش کنم ابن زیاد گفت من نزد تو باز گردم پس مهران او را به شتاب میبرد و گفت قسم به خدا که میخواستند تو را بکشند عبیدالله گفت چگونه با اینکه شریک را اکرام میکنم آن هم در خانه هانی که پدرم انعام ها بر او کرده بود مهران گفت همین است که با تو گفتم و مسلم بیرون آمد شریک با او گفت تو را چه مانع شد از کشتن وی؟ گفت دو چیز یکی آنکهانی کراهت داشت او در خانه او کشته شود و دیگر حدیثی که مردم از پیغمبر روایت کردن که اسلام از کشتن ناگهانی من کرده است و مسلمان چنین کشته نشود شریک به او گفت اگر وی را کشته بودی فاسق فاجر کافر مکاری را کشته بودی. و گویند چون ابن زیاد بیرون رفت مسلم نزد شریک آمد شمشیر به دست شریک گفت تو را چه مانه آمد از آن کار؟ گفت خواستم بیرون آیم زنی به من در آویخت و گفت را به خدا قسم که ابن زیاد را در خانه ما مکش. و بگریست. پاششم شمشیر بیانداختم و بنشستم هانی گفت وای بر زن که هم خود را کشت و هم مرا و آنچه می ترسید در آن واقع شد و سه روز دیگر شریک بزیست و درگذشت به الله بر وی نماز گذارد و بعد از اینکه دانست شریک مسلم را به قتل وی ترغیب کرده بود گفت دیگر بر جنازه عراقی نماز نگذارم و اگر قبر زیاد در عراق نبود قبر شریک را نبش می کردن ابن زیاد که با آن مال آمده بود پس از مرگ شریک با مسلم ابن اوسجه رفت و آمد می کرد تا او را نزد مسلم ابن عقیل برد و مسلم از او بیعت بستاند و ابو سمامه را بفرمود تا مال از او بگرفت و او مالها را میگرفت و هر چی یکدیگر را اعانت میکردند به دست او بود و سلام میخرید و مردی بسیر و از شجاعان عرب و چهره شناسان شیعه بود و آن غلام ابن زیاد نزد آنها میآمد از رازهای آنها آگاه میشد و برای ابن زیاد خبر میبرد وهانی از ابن زیاد بریده بود و به بهانه بیماری در خانه نشسته عبیدالله محمد اشعس و اسماء خارجه را بخواند و امر بن حجاج را هم و رویحه دختر ابن امر زن حانی و مادر یحیی ابن هانی بود از حال هانی بپرسید امر گفت بیمار است عبیدالله گفت شنیدم بهتر شده است و بر در خانه‌اش او را ملاقات کنید و بگویید آنچه بر وی لازم است ترک نکند آنها گفتند تا امان ندهی او نیاید گفت او را با امان چه کار؟ کارزشتی نکرده است بروید و اگر بی امان نیامد او را امان دهی پس نزد او آمدند و گفتند امیر از تو میپرسید. پرسید می گفت اگر دانستمی که او بیمار است ایادتش می کردم. و چنان به وی خبر داده اند که بر در خانه می نشینی. و می گفت دیر شد که نزد ما نیامد و دوری و جفا را سلطان تحمل نکند تو را سوگند می دهیم که با ما بیایی هانی گفت اگر مرا بگیرد بکشد و آنها اصرار کردند. پس هانی جامعه خود را خواست و بپوشید و از خیش را سوار شد چون نزدیک قصد رسید در دلش افتاد که شری شر در پیش است به حسان ابن اسما خارجه گفت برادرزاده من از این مرد ترسانم تو چه می بینی؟ گفت من بر تو هیچ ترس ندارم، این گونه اندیشه ها به خود راه مده و اسما هیچ از ماجرا آگاه نبود، اما محمد اشعس می دانست. این جماعت بر ابن زیاد داخل شدند و حانی با ایشان. روز جمعه بود و عبیدالله در جامع خطبه میخواند. خاند. حانی در مسجد بنشست و گیسوان از دو سوی تافته و آویخته داشت. چون الله نماز بگذارد حانی را بخواند و حانی در پی او برفت تا به دارالعماره در آمد و سلام کرد ابن زیاد گفت خیانتکار به پای خود آمد چون نزدیک ابن زیاد شد شره نزد او نشسته بود روی به جانب او کرد و گفت میخواهم او را عطای بخشم و او میخواهد مرا بکشد بگو بهانه تو چیست نزد دوست مرادی تو هانی گفت مگر چه شده است ابیدالله گفت به یاد نداری که پدرم به این شهر آمد و یکتن از شیعه را رها نکرد مگر همه را بکشت جز پدر تو و حجر و از حجر آن صادر شد که میدانی آنگاه پیوسته رفتارش با تو نیکو بود و به امیر کوفه نوشت حاجت من از تو آن است که هانی را نیکو بداری هانی گفت آری ابیدالله گفت پاداش من این است که در خانه خود مردی را پنهان کنی تا مرا بکشد هانی گفت چنین نکردم ابن زیاد گفت این چه شوری است که بر پا کرده ای برای امیرالمؤمنین یعنی یزید و مسلمین مسلم را آورده ای و در خانه خود جای داده ای برای او مرد و سلاح جمع می کنی و گمان کردی که اینها بر من پوشیده است حانی گفت چنین نکردم ابن زیاد گفت چرا؟ و نزاع میان آنها طول کشید پس ابن زیاد آن قلام خود را که جاسوس بود بخواند و او بیامد و پیش روی حانی بیستاد ابن زیاد پرسید این را می گفت بلی پس ساعتی متعیر به من. هانی به خود آمد و گفت از من بشنو و باور دار به خدا سوگند که با تو دروغ نمیگویم او را من دعوت نکردم و از کار او هیچ آگاه نبودم تا دیدم در سرای من آمده است و میخواهد فرود آورمش و من از بازگردانیدن او شرم داشتم و تکلیف بر عهده من آمد او را به سرای خود در آوردم و مهمان کردم و کار او چنان شد که خبر آن به تو رسید. پس اگر خواهی اکنون با تو پیمان استوار میبندم و به تو گروگان میدهم که در دست تو باشد و تعهد کنم که بروم و او را از خانه خیش بیرون کنم و به سوی تو باز آیم. گفت نه سوگند به خدا که از من جدا نشوی تا او را نزد من آوری گفت هرگز مهمان خود را نمی آورم که تو او را بکشی الله گفت به خدا سوگند باید بیاوری گفت به خدا سوگند که نمی آورم والله اگر زیر پاهای من باشد پای بر ندارم و او را به تو تسلیم نکنم چون سخن میان آنها طولانی شد مسلم ابن امر باهلی برخاست و در کوفه نه شامی و نه بسری غیر او نبود چون سماجت حانی بدید گفت بگذار من با او سخنگویم حانی را به جانبی کشید و با او خلوت کرد و گفت ای حانی تو را به خدا که خیش را به کشتن مده و خود را در بلا میفکن این مرد یعنی مسلم ابن عقیل پسر ام اینهاست او را نمی کشند و آسیبی به دو نمی‌رسانند وی را به سپار که بر تو ننگی نیست اگر مهمان را به سلطان تسلیم کنی حانی گفت چرا والله برای من ننگوار است میهمان خود را نمیدهم. در حالی که خود تن درستم و بازوی قوی و یاوران بسیار دارم والله اگر یکتن بودم و یاوری نداشتم باز او را تسلیم نمی کردم مگر این که در پیش او جان بدهم ابن زیاد این بشنید گفت او را نزدیک آورید نزدیک آوردن گفت قسم به خدا یا باید او را بیاوری یا گردنت را میزنم گفت اگر چنین کنی در گرد سرای تو شمشیرهای فراوان کشیده می شود پنداشته بود که اشیرت وی به حمایت او برمیخیزن ابن زیاد گفت آیا مرا به شمشیر اشیرت خود میترسانی؟ هانی گفت تو زیاد را بر من نعمت و است. و من دوست دارم آن را تلافی کنم آیا میخواهی تو را به خبری راهنمایی کنم ابن زیاد گفت آن چیست گفت تو و خانوادت اموال خود را برداشته به سلامت جانب شام روید چون کسی که از تو و از صاحب تو به این امر سزاوار ترست آمد عبیدالله سر به زیر انداخ و مهران بر سر او ایستاده در دستش اصایی پیکاندار بود گفت این چه است که این بنده جولا تو را در قلمرو رو حکومت تو امان میدهد عبیدالله گفت او را بگیر مهران اصا از دست بینداخت و سوی یهانی بگرفت و صورت او را نگاه داشت و عبیدالله آن عصا را برگرفت و بر روی هانی سد و پیکان او از شدت ضربت بیرون آمد به دیوار جست و فرو رفت. و آنقدر بر بینی و پیشانی و گونه های او کوفت تا بینی او شکست و خون بر جامه او روان گشت و گوشت صورت او و گونه های او بر ریشش پراکنده شد و اصابش گست هانی دست به دستی شمشیر شرطه برد و آن را بکشید شرطه مانع شد عبیدالله گفت آیا تو از خوارجی خون خود را برای ما حلال کردی و کشتن تو برای ما جائز شد گفت او را بکشی کشیدند و در خانه از خانه های قصر برده در بروی او بستند و گفت پاسبان بر وی گمارید پاسبان بر وی گماشتند. اسماع خارجه در مقابل عبیدالله بیستاد و گفت ای بی پیمان شکن او را رها کن ما را امر کردی این مرد را بیاوریم چون آوردیم روی او را بشکستی و خون روان ساختی و میگویی تو را میکشم عبيدالله بفرمود تا مشت بر سینه او کوفتند و با لگد و مشت آرام از او ببریدند آنگاه رها کردن تا بنشست اما محمد اشعز گفت رعی امیر را بپسندیم چه به سود ما باشد چه به زیان ما امر ابن حجاج را خبر رسید که هانی را کشتند پس با قبیله مزهج بیامد و گرداگرد گرد قصر را بگرفتند و بانگ زد من امر ابن حجاجم و اینها سواران مزهج و بزرگان آنها از طاعت بیرون نرفته و از جماعت جدا نشده این. شره قاضی آنجا بود عبدالله به او گفت برو و صاحب اینها را یعنی هانی را ببینون نزد آنها رو بگو زنده است چون شره بر درآمد. در هانی با او گفت ای مسلمانان مگر عشیره من هلاک شدند دینداران کجایند یاری کنندگان چه شدند آیا دشمن و دشمنزادی ایشان مرا اینطور تخفیف کنند اونگاه زجه ای شنید گفت ای شره گمان دارم اینها آواز قبیله مزهج است و مسلمانان و پیروان من اگر ده تن از ایشان اینجا آین مرا برهانم شره گفت را زنده میبینم هانی گفت آیا با این حالت که میبینی من زنده قوم مرا آگاه کن که اگر بازگردند مرا خواهند کشت شره نزد عبیدالله آمد و گفت او را زنده دیدم اما بر او نشان ستم و شکنجه تو پدیدار بود. اوبیدالله گفت آیا چیز زشت و منکری است که والی رئیت خود را عقوبت کند؟ بیرون رو نزد این قوم و آنها را آگاه کن. پس بیرون آمد و اوبیدالله مهران را فرمود تا همراه شره بیرون رفت. شره گفت این بانگ و فریاد چیست؟ صاحب شما را دیدم زنده بود؟ و امیر وی را اتابی کرده است و آزرده است چنان که جان او در خطر نیفتاده بازگردید و جان خیش و صاحب خود را در معرض هلاک نیاورید امر ابن حجاج به یاران گفت اکنون که کشته نشده است الحمدلله و بازگشتند عبدالله ابن حازم گفت من رسول ابن عقیل بودم در قصر تا بنگرم برهانی چه می گذارد. چون او را زدند و حبس کردند بر اسب خیش نشستم و زودتر از همه اهل خانه خبر به مسلم ابن عقیل دادم و زنانی دیدم از قبیله مراد گرد هم فریاد می زدند ای که چشم ها براید عشق ریزند ای که مادرت بگرید برایت؟ بر مسلم در آمدم و خبر بگفتم مرا فرمود تا بروم و در میان یاران او بانگ برآورم و آنها خانه ها را در گرداگرد او پر کرده بودند من فریاد زدم یا منصور امت و این شعار ایشان بود یعنی ایاری شده بکش پس اهل کوفه یکدیگر را خبر کردند و نزد مسلم فراهم شدند مسلم برای عبدالله ابن عزیز کندی رایت بست و او را بر جماعت کنده امیر ساخت به او گفت پیش روی من رو و برای مسلم ابن اوسجه بر جماعت بنی اصد و مزهج و برای عباس ابن جوده جدلی بر ربع مدینه و به جانب قصر روی آورد ابن زیاد را این خبر برسید در قصر تحسن جست و در ببست مسلم گرد قصر بگرفت و مسجد و بازار از مردم پر شد و پیوسته تا شب جمع گردیدند و کار بر عبید الله تنگ شد که با او بیش از سی تن شرطه و تن از اشراف و خانواده و موالی او کسی نبود و اشراف مردم از آن در قصر که به طرف دار رومیین بود نزد ابن زیاد می آمدند و به او میپیوستند پیوستند و مردم ابن زیاد و پدرش را دشنا میدادند. پس ابن زیاد کسیر ابن شهاب حارسی را بخواند و امر کرد با هر کس فرمان بردار اوس از قبیله مزهج بروند و مردم را از یاری مسلم ابن عقیل باز دارند و آنان را تخفیف کنند و هم محمد اشعس را گفت با هر کس از کنده و هزرمود که مطیع اوست رایتی نهست کند که هر کس زیر آن رایت آمد در امان باشد. و قعقا ابن شور و شبسب ابن ربعی و هجار ابن ابجر و شبرمل زلجوشن را با رایتی بفرستاد و اعیان را نزد خود نگاه داشت. تا بدانها اونس جوید که با او اندک کس منده بود. و آن گروه رفتند و مردم را از یاری مسلم باز می‌داشتند و ابیদুল্লাহ اشرافی را که با او بودند امر کرد تا از بالای قصر بر مردم مشرف شوند و اهل طاعت را به آرزوها فریب دهند و اهل معصیت را تخویف کنند و آنها چنین کردند و مردم چون گفتار رؤسا را شنیدند بپراکندند چنان که زن نزدیک پسر و برادر خود می آمد و میگفت بازگرد مردم دیگر که هستند کفایت می کنند. خروج مسلم در کوفه روز سهشنبه هشت روز گذشته از زلحجه سال شستم است و همان روزی است که حسین از مکه سوی کوفه روانه شد و بعضی گویند روز چهارشنبه عرفه بوده است و حسین در مکه بقیه ماه شعبان و رمضان و شوال و زلقعده و هشت روز از زلحجه بماند و آن مدت که در مکه بود گروهی از مردم حجاز و بسره به وی پیوستند و با اهل بیت و موالی او شدند